فیلم داماد خوشگدا، نویسنده نیما حسنیان بازیگران محمد رضا هدایتی در نقش سیاوش، نادر سلیمانی در نقش بهزار افسر اسدی در نقش مادر سیاوش، فلامک جنیدی در نقش سهر، سعید پیر در نقش پدر نیلوفر، آقای فاطمی، نادیا دلدار گلچین در نقش زری مادر سهر و هادی کاظمی در نقش فرزین آهنگساز نیما نور محمدی، کارگردان کاظم راستگفتار، تهیه کننده محمد کمالیفو. داخل مانتو فروشی فرزین فرزین با موهاب و چشم و عبروی مشکی لاغرندام و رفتار زنونه ای داره فرزین جلوی در اتاق پرو می خب خیلی خب آماده شدی عزیزم بیا بیرون بیا خب بیا دیگه خب و؟ سیاوش که موها و ریش پروفسوری باریک و قهوهی داره یه مانتو پوشیده و از اتاق پرو بیرون میاد واه واه واه این جنگل مسنا؟ چی بهش آویزون کردی؟ رنگش هم که خیلی خیلی زشته این چیه کلا ترش این اضافه شده؟ دوچماشن که کاملا عینه شریع این کلی است؟ تو گفتی که کاملا عوض شده این ای بخدا عوض کردی تو خود اینو میپوشی خب معلوم نه خب ببین خودت هم نمیشه به خب مرد حسابی من مرد من اسم اسم آقا تو دهنتو این جان تو 100 تا مانتوی که با میدوزیم یه دو خراب در میاد شما هم گیر دادی به برنه... تا یه اینا همش خراب همش خراب یه من نمیخوره نمیخوره که اصلا چیزی که تو این شعر زیاده مانتو خره. اینا به اونا میپوشن. برو آقا برو حاجی که دوسته فقط اینو بده از من مانتو خطر دیگه پیدا نمیشه. مانتو خرخرتر سیاوش بدون اینکه مانتو رو از تنش در بیاره کیسه های مانتو رو بر میداره و از مغازه بیرون میاد. مردم با تعجب به سیاوش که مانتو پوشیده نگاه میکنن. سیاوش یه نگاه به خودش میکنه و تازه متوجه اوضا میشه و با اجله به مغازه برمیگرده این دوستون دکی بیتونه ها بریم برده ای خیابون <تصفيق> منتاد یک بار مزدفن که هست معلومه بودیم وقتی یک گردن کلوب تنش بکنه خب گرد بخوردی که در هر صورت منتاد به درد کار ما دیگه باسه ما جنس نیار همین یا نه یعنی ما دیگه اصلا با هم دیگه کار نمی‌کنیم. نه خیر. تو هنوز نمی چه لباسی مناسبه یه خانمی خیلی بده. برو هر وقت ازدواج کردی واسه ما جنس میاری. باش. سیاوش سیاوش مانتورو از تنش در میاره. سیاوش ها رو بر میداره و از مغازه بیرون می تولیدیه سیاوش خانوم های کارگر در حال انجام کار هستن. یکی پارچه رو برش میزن. یکی پارچه رو می‌دوزه. یکی پارچه ها رو اون یکی مانتوها را جاب جاوه بگن همه ی خانم ها مشغول حرف زدن با همه خانم فاطمه این یعنی نیلوفر در حال لباشک خوردن بینیم من قصد از ندارم این هم روغه میگه وقت این وقتی نکنم خود نم قصد از زواج ندارم چیچن خواستگاره آره و خواستگار باید نه بابا خواهی تو سرش کنم سو هر کد بود بابا خب حق داره خواستگاره من جای جا می ها میتونه حق باشده که بابا بابا انقدر شوه شوهر شوهر نکنید آقا رو هرچی دختری بردید آه اوه اوه اوه ببین چی داره و کی میگه تارخ خلا خودش از همه بدتره ها بگو انگاه مثلا خودش تیر خیلی خوش راست میگه خدا اینو راست میگه من باشم خود میگه من هست همه بدترم آره فاطمی جود ببین نظر بینه بگم هفته پیش چی میگفتی نظر بگم خانم ها پارچه ها رو به سمت هم پرتاب میکنه با ظاهری تقریبا چاق و یه کلاه چهارخونه خونه روی سرش پست میز نشسته و با یه دستگاه رایانه مشغول بازیهقا نه نه الان سیافش به زور در کارگاه رو باز میکنه و داخل میشه خانم با دیدن سیافش همهدی سکوت میکنه سیاوش شما، شکری؟ سلام و زهر حلاهه هیچ معلومه شده چه خبره؟ کجا؟ کجا؟ اینجا؟ سیاوش کیسه های مانتو رو روی میز میزنه همه شون مرجو شدن مرجو شدن؟ تو مردی سر به اینا بزنی؟ سیاوش بارده سالون امینا. کارگاه میشه هیچ از شما اینجا داری چی میگوزین؟ خب چی میگوزین؟ آه بگه، آه بگه، آه بگه. مانتو بودم آبه دید ناوغه سیافش به اتاقش میره و با کیسه های منتو برمی مانتو منتو میدوزیدین؟ درست؟ درست؟ این کجه کجه؟ این منتو های؟ یقش رو با اصلیش دوختید چرا یقش رو باز؟ اصلیش میدوزید؟ این اینی گونی بخیمه چرا اینه دور دور میدوزید؟ اینه منتو های؟, دوار دوار منتو های؟ خوش. خوش رو رو اینه خودتون رو جور میشینیداره بپشینید اخه این به بیرسی خودم میلیم پاشم بیا همه اون چه خورو بشکرم چک داریم چماش چک داریم چک داریم پرگیم چک چک نداریم چقدر چک داریم بهزاد ایچ بلش کن خودا دو میلیون چک داریم من بیشاره کنیم من بیشاره کنیم من باقتیم بلش کنیم سیاهش بلشو کن. بلشو گن برو منو تو اسم گویی من اگه سرمایه به جای خراب بودم توی بانک خاب بودم بودم لنگم رو لنگم مینداختم توی خونه گرم کلی سود کرده بودم من آخرش از به حساب سیاوش رو میگیرم به زور به اتاق میبرم جهنم بس فقط ببینم اصلا اینو راحت بشه گوی <متصفيق> میبینی یارو من میگه که تا اضافه نکردی ازم جنس نمیخریم چلفته همین جور بهزاد نامه بهزاد که منم بابا اون فرزینه فرزین نامه پر میونه نگفته همیشه میره نگفته آخه ازدواجش با چرا که فروش مانتوره بابا جون یه چیزایی هست که آدم نمیتونه دکتره جدید چی شد آوردید نه, نه یه چیزایی هست که آدم نمیتونه چی دکتره جدید ماچی نه چی،, چی نه خدا؟ خدا؟ بابا جون همین شما روزیش کن آقا مانتورا منتظرند پیک پای ما بزن آقا جون بعد شما گفتن آقا مجمد ما متعین نمیخواد بیا بچ بچ بچ بچ من کی میدونم کی راه برای خال سرکی بزنم من کی میدونم کی من گفتم شهرام گفته شهرامم چی گفته چرا تو گفت شهرام گفته تو گفت شهرام ما کی گفتم همینا تو گفت به حساب خودت تو شهرام بگو تا دیروسی پیش انتماس من نمیکردی که یک لحظه بیام ببینمت من نمیومدم حالا دو تا رفت واسه من ابراز اخیت میکنید همینا گفته گفتن مجردی نمیخوام یا دیگه بس دیگه. همکارست دیگه. بسته دیگه. من بس گفتم اتاقش به بیرون نگاه میکنه طبعا. و به فکر پر امشب کی قراره همه بریم خونه به شهرم جمع بشیم و من هم اون تخمها افتاد گردنی که هیچکس نمیتونه پیدا بکنه میارم. دو تا گل که خوردین روتون که کم شد اون وقت از فردا من دیگه دلم نمیخواد شما رو ببینم ناچ نمیشه بابا ما مادرم یا نمیشه بگه بردست از که به مادرم میام؟ اصلا گروه بابای فوتبال دیگه هیچ کدومتون نمیخواد ببینم شب شده سیاوش وارد خونه میشه و به اتاقش میره رو و روی تختش میشینه و فکر میکنه شده. مادر بهزاد براش نیمرو درست میکنه صد دفعه بت گفتم مادر جان مانتهای پایزه رو باید از اول مرداد دو این پدر خدا بیا مردت درست عین خوده دو. درست 23 ماه این شهریور که میشود تازه به فکر دختن مانتهای پاییزه میفتاد فکرشو بکنم خب یه چیزی بخور دیگه؟ نه نه سبونه از نهار و شام هم باجبتره همین شای خونه یه لغمه بگیرم برات چه شده؟ آدم به مادرش میگه آدم هیچ چیز رو از مادرش پنهون نمی کنه نمیخواه به من بگی؟ ماما کاش بابا بود خدا رحمتش کنه ماما بابا به همه آرزوی خودش رسید آره. فقط یه آرزو که بهش نرسید بغز گلوی مادر سیاوش رو میگیره اونم از ازدواج تو بود سیاوش میخواد چیزی بگه اما حرفشو میخواد میتونه منم مثل بدهید بمیرم آرزو در دل بمونه خدا افس سیاوشونی خدا پشت پناهت مادر سیاوش میخنده و از جاش بلند میشه عکس روی دیوار که تصویر سیاوش رو با یه قیافه خنده‌دار که روی یه دستگاه ورزشی نشسته نشون میده الو آقا منو سلام مدرسه سیاوش هم خب هستیم شما به دوستاتون گفتیم که دیگه سیاوش هستو جمع خودشون رو ندردن دیگه درسته؟ آها پس به قادر همین بوده چون دیشم اومد خونه اونقد پکر بود که عد نداشت حتما رفت که پشت در پرستدنش بیرون راش ندادن خب اینجوری خیلی بهتره یه خوده به خودش میاد بله خیلی ممنون خدا حافظ شما الله قربون پسرم برم که میخواد دو مات بشه. توی صندوق جعبه و یه کیسه وارد مغازه فرزین میشه. <متحق> با بابا خبر مرغت رو بیانم. باز رفته بانکو خلاص کنی فرزین؟ <متحق> کجایی؟ چیه چه خبرته؟ فرزین از لابلای مانتوها بیرون میاد. تو چکار میکنی ها؟ ببینم تنهایی یا با اون بچه‌پوره اومدی؟ کوری؟ اینی که با کسی نیومادم، خودم تنها اومدم. من نفهمید از شما جنس بگیرم یا نگیرم. چرا متوجه نیستی؟ مادر سیاوش می‌خواد سیاوشو تحت فشار قرار بده که برای ازدواج کنه. منو تو هم مسئول این کار شدیم. چه حرفا چه چیزا، آدم شاخ در میاره. خب خبر مرگش برو بر زنهشو بگیر. چرا کارکاسبی مراد داره تعطیل میکنه. بیا بابا بگیری ما تو هره بشماره صابتی تمام هاره بخونم بیا بابا اما جانم بیزاد اگه عروسی نروسی من خبر کنید دوست دارم <تصفيق> بیزاد وارد دفتر کار سیاوش میشه سیاوش ناراحت پشت میز نشسته و یه کاغذ الگو رو برش میزنه کنه حالا چی شده بگه؟ حرف فر زدن بگه خیلی مزیه آنطور مجردی با تشر ده تو غروه دیگه درظ ننگاتندا فوتبال به توم های چای نمیده نظر بچه ها میخواینه کی راجی به او نداره فکر میکنه و چی فکر میکنی مادرم امروز یه حرفی زد که دامونم کرد مافل چی مادرم گفت پدرت قبل از مرگش همون زمانی که مریض بود خب آرزو داشت که تو دو ماد بشه زهر ماد کجایت خنده داره؟ آقا تو اون از 11 سالت بوده چجوری آرزو داشته تو دو ماد بشه تو 11 سالگی؟ کاش بودو میدید به چی میدید؟ میدید که تو تو 11 سالگی ازدواج میکنی؟ حالا من یه چیزی گفتم خب بگو بگو حرفتا مادرم میگه من آرزو به دل نزار از گیری کردی ما خب راست میگه دیگه رست دیگه تو حساب کن خب وقتی مادری ببینه که پسرش لباس دومادی پوشیده میدونی چقدر خوشحال میشه ولی آقا تو, تو با این کاره درید دق میدی مادر پیرپاتالتو یه دیو مادر من میگه پیر پاتان جون الان افتاده باور کن به خاطر کار چیکار کنم؟ من کسی در نظر ندارم آخو اوکی تو اوکی رو بده تو اوکی رو مادر همیشه برای پیر یه تو سیاوش با سبد لباس ها روی سراس ایستاده و مادرش لباس ها رو پهن, پهن. با... من به سلیقه شما شک دارم. بارک الله. مرسی نه. اونم از راس. حالا بگی برس من شک داری خب بالاخره ب... ب... طبیعه و تو بعضی چیز را اختلاف طریقه داشته باشیم بسان همین دو خواسته وای اینو از دستان بگیر بر بربر بر من میگاه میکنه بعض نز قدیم گفتن که حرف اول آخر و انتخاب اول آخر با مادره آه خدا از زنتون بشنه خ ختون یه قدیمی قدیمیه گفته باقا از قدیمی با الان کل بر می کنه او خاجری مثلا زن چ ا روی پاچه بازی دوست داشتنان که اینجوری نیست که دوست ندارم من که سلی هم ابرووی پاچه دوران قجر نیست که سیاه و این حرفا چ داریم زننی؟ من می تو چی دوست داری چی دوست داری چی دوست دارم چی دوست دارم ببین همونطور که میتونم تشخفدم تا قمه سبزی خوشت میاد ولی از خورش بامی متنفری همونطوران هم میتونم بفهمم که تو از چه جور دختری خوشت میاد از چه دختری بعدت میاد ای ای ای ای شما زن آینده ای منو با خورش خونه سبجی خورش بامیه مقایزه رو کنی دختری سراغ دارم که اگر ببینیش ندهت میخواد ده بار باش ازدواج کنی حالا کی هست میبینیش سیاوش و شلوار پوشیده و با یه جعبه شیرینی از مغازه شیرینی فروشی بیرون میاد و سوار ماشین میشه ماشین سیاوش جلوی یه آپارتمان شیک نگه می خوبه. داری خوبه کجا این بره چرا باسته بیدیه دیگه؟ سیاوش یه نگاهی به آپارتمان می مادر سیاوش جلوی پله های آجوری و طول و درازی که یه خونه قدیمی قرار داره می اینجا برای بر من زن بگیری؟ مگه چه اشکالی داره؟ عوضش دختر دارن اینی قرص ما به دیگه اینی قرص ما خوبه تا کره ما هم بریم که سیافش با دستگل توی دستش همراه مادرش از پله ها بالا میرن اطراف پله ها دیوار وجود داره و راه باریکیه پله ها زیاد و خسته کنندن و سیاوش و مادرش مجبورن وسط راه بیستن و نفسی تازه کنن و دوباره راه بیفتن سیاوش و مادرش حسابی گرمشون شد و عرق کردن سیاوش خودش رو باپیزن زری خانوم گوشاش سنگینه چقدر هوا گرمه داری جان آخه آخه من بمیرم میدونم خیلی زیاده پلوه خسته شدی آره؟ نه بارم کردی بیا باده دو سرم باید نه اگر بدونی چقدر خوشحالم چقدر برون مایی افتخار که الان اینجا پیش شما آخه نه بابا من کنم ندارم خورمونت دارم زود درست که نمیگم بیان که نه این بار خیلی فرق میکنه فرق میکنه چون به منظور دیگه اومدیم مامان منظورشون اینه که واسه امر خیر اومدن خب منم میگم دیگه شوهر آره خواستگاری از سهر خب دیگه منم میگم که آره خاستگاری آره راست میگه دو سرم خب شما خوبه خیلی خوش اومدید خیلی خوش اومدید سهرجون جون تشریف ندارن سهر هست هست چرا خیلی بچه داره از چای چاییدم میکنه ماشالله فکر کنم سهر از ده تا انگشتش یه هنر میباره <تصفيق> اون کلاه به من میدی خیلی خوش امردی خیلی خوش امردی راز ببینم شما دیپلم داری دیپلم که من سال پیش گرفتم 15 سالگی گرفتی؟ نه 15 سال پیش من دیپلم گرفتم الان من لیسانس هم لیسانس ترحیل لباس هم آها نه نداره خوب میشی خوب میشی من قردن نجام ازدواج کنی میشونه دیپلومت هم بگیری خب شبو میری قبول میشی مادر ات نداره, نداره. مکافاتی داریم با شما پس به هر حال امیدوارم که سیاوش رو به غلامی قبول کنید آره آره الان <تصفح> میاد ال و چای میاد. سحر با یه سینی چای وارد میشه. سرم. خیلی وقت ریختم خدا کنه یخ نکنده بشه. داشتم. ماموندو سارا. سیاوش میخواد چای برداره که سحر رو داخل چای سیاوش فرو میکنه. خاله. نه خود بفرمایید. خاص من یخ نکرده باشه. قند سیاوش با تعجب به سهر نگاه میکنه و چایی رو سر جاش میذاره و یکی دیگه برمیداره سهر دوباره انگشتش رو داخل چایی فرو میبره. مامان کاشو بریم. کجا؟ تو چه چود؟ چیزی نشده. فقط این خانم از هر انگشتشون به جای هنر یه دونه ناخون میفته توی چای مردم اوه شما چه کار میکنه. برای خوشگلی این کارو کردی؟ نه من نمیدونم این کارو یعنی چی مامان من،, من زن و طبیعیشو دوست دارم نه که همه چیز مصنوعی باشه شما لاباد گوشتون همه حتما کره سمعک گذاشتید بله حتما دخترتون کورم هست چشاشو عمل کرده نه خیلی خانم من اینجوری دوست ندارم از همین اول خواستگاری وقتی همه چیز با دروغ باشه من نمیدونم ای خانما بره چه همه چیزای چیز مصنوعی رو دوست دارن من اومدم با یه زن ازدواج بکنم نه یه ربات بست دیگه باش بریم سیاوش ناخونه مصنوعی سهر رو از چایش در میاره سیاوش بلند میشه و میره و مادرش هم دنبالش میره زریخانمون خیلی ناراحت میشه خواهر کوچیکی سهر گریه میکنه سهرم گریش میدیره زری خانم به آسمون نگاه میکنه و بالا میاره و با فریاد آه میکشه سیابش وقتی در خونه رو باز میکنه حس میکنه موجی از انرژی به صورتش برخورد کرد سیابش سیابش صاف کنم با, با تو. که جلد نمیکشی ما به سنگی روی یخت میکنی بیلیقات اگه اون پیرزن آهش ما رو بگه میدونی چه والله سرو من به من میگه بیلیقات اونم تو اینجوری بابا توهین کردی وقتی به من میگه بیلیقات تو توهین کردی یا اونها اونا, اونا بدبخته کاری نداشتن که آدم, از وسط بیرون. نه خیلی آدم وسط خواستگاری می بیرون نه خیر آدم وسط خواستگاری پا نمیشد بیاد بیرون ولی کاری کردن که اصالتو پاس کردنی برای ما بهتر بود بهتر بود که بهتر بود ها هم بدتر بود اون دختر فاطمه اصلا فقط خاص صداقتت چه به تو نشون بده همین آقا من نمیخوام انگوش فقط رو بکنه تو چای انگشت تو اینجوری کرد تو چای من صلاحات صلاحات میکنه برای من تو نمیتونی بفهمی تو یه زن نیستی بفهمی ناخون مصنوعی یعنی چی خب فقط چطش کندشه ايش کاری که نداری که آها یعنی هیچ مشکلی خانم نداشت فقط موده چسب و قلع مشکل داشت آقا من نمیخوام از عجبه بدبختی من فردا یه پاشو میکنه توی کاسه آب گوشن نیمخم در در ماشین. کجا در ماشین بریم؟ بیا بشین من من نمیوارم. نه من اصلا رانندگی ندارم. بیا من درباد می کنم خودت بشین رانندگی کن. انگار من راننده این محتویاتیشم میگم بیا بشین پشت فرمون محوسا نوام خودم. خوبه بالا پسر بزرگ کردم حالا باید راننده شون بشم. سیاوش و مادرش سوار ماشین میشن و حرکت میکنن. بهزاد پشت میز دفتر نشسته و با تلفن حرف میزنه. به مال تو لطفی نده. مادرش گفت آقا تو جم راش نذید، منم راش نذید. الحمدلله همله همه چی به خیر و خوش تم شدهه رفز ب بچ کنه سیاواش وارد اتاق میشه. بهز ها تلفن رو قطع میکنه. کنه چطوری شمون یه وقت دست دست در این تلفن بر نداری یا گناه داره بیکار میمونونه کوم <تصفيق> این کار رو نمیکنیشه؟ این می <مسلام> کن دست کار نمیکننزن؟یهخور نزن؟ و میشه دستیه ق دمس برداری؟ دیشب چی شد؟ میگم دیشب چی شد این مادر منم که فقط دلش میخواد من ازدواج بکنم حالا با کیش مهم نیست یعنی چی؟ همه چیست کنفیر سیاوش با تأصف سرد کن میده اه بسکوری من کورم این کوری دیگه ببینم تو میخوای ازدواج کنی یا نه خب م... بهزاد پشت کرکره میسته البته فقط به خاطر مادرم اونم برای اینکه هر وقت بیبینمش غم چشماش داغونم بکنه ولی خوبم که نگاه میکنم بیبینم وقتشه دیگه نه بگذار آره. از وقت تو گذشته هیچی تو تایم اضافهی سهیچه مقبی چه که میگی؟ اگه مادرت برات آسین ماله نظره خودم برات آسین ماله بگذارم بیا به احساد کرکره رو بالا میزن و به کارگران نگاه میکنه بیا بیا یکی اینجا با با بارا بابا من بیام با کلگران ازواج کنم همینگه می کنم غرور داری بگم قرور همین عذران مکه من بگونه خدا نیستم اصلا بگو بینم من و بخاره چجوری با هم اشنا شدم همینجا همینجا با هم اشنا شدم ازواج هم کردیم خوب و خود اصلا بگم شهران دارو الان پنج سال ازواج کرده شیش تا بچه داره ازدواج شیش تا بچه داد. خب ما احتمال تا بچه شیش تا ازدواج شده 5 تا بچه دار. همین که باباش میشه. ما ما از مشروط تنظیم خونه بودیم که اینا ببینیم. آقا تو ول کن. اسکر بالنتی رو چی میدید؟ خانم سنجری رو هم با هم ازدواج کردن. تو اینا رو ول کن. ول کن. استاد دانشگاه با دانشوش داره زندگی میکنه. ازدواج کرده. خوبه خوش هستن. زندگی زنده رویایی این همین میگم شاید بدونی کلاس رو پیمی کوره نه شاید اسم بوده نه نه نه نه نه چی؟ من نداریم کیکی قد من با کیست دو با کیای چی چی کاری شده چی؟ چی؟ بای فاخر سر سیاهوش رو میگیره و لای کرکره میذاره که بیرون رو نگاه کنه با بابا همین هر روز بود من کلی داد بیداد یارم سر کنم کاری اصلا ربطی به ازفاید ازفاید بداره باید راه شو کاری کاری؟ خلافات بگیم عزی بروی چهاری دیگه یعنی نه بخوش تالی دیگه همین دیگه سیاوش به سمت خانم فاطمی که پشت شرخ نشسته میده سیاوش یکی یکی به کارگران نگاه میکنه کارگره ها حسابی سیاوش درسگره. سیاوش درستگرم سیاوش محکم با دست روی میز خانم فاطمی میکوبه احزاد از پشت کرکره یا رو نگاه می کنی من میخواستم خدمتتون بگم که خسته نباشید خسته نباشید همه تون کارتون رو خیلی خوب انجام دادید و من من راضیم من راضیم بله. اما در بین شما یک نفر هست که کارشو خیلی بهتر از بقیه انجام داده و اون هم کسی نیست جز اه اه اه خانم, فاطمی. خانم فاطمی خانم فاطمی با چشمای گرد سیاوش رو نگاه میکنه و کارگرها هم تعجب می کن. و همه تون سعی کنید که خانم خانم فاتیمی رو الگو قرار بدین خانم فاتیمی رو الگو قرار بدین همه تون خوب کار میکنه حالا به کارتون برسید به کارتون برسید به کارتون می کارتو کارتو من رازی هم خانم فاطمه لطف کنید به مادرتون اینا بدید که من و مادرم فردا میرسیم خدمتتون برای یک همدرخ همدرخ سیغاش میره خانم فاطمی با دهان باز نگاهش میکنه منزل خانم فاطمی چه خبر میشد؟ تو کار پوسروده بودی؟ بله, بله بله بله چه تجارتی داشتین کار عالی بود عالی بود اصلا اصل اولی پارا بود هر اینطوری نبود ابریشم می اومد چتون میرفت چتون می اومد ابریشم می رفت. اتفاقا ایشون چقدر از آقای باستانی تعریف کردن در حال من خیلی خوشحالم که امروز شما رو زیارت میکنم و در از هستم بله در حال همیشه آقای باستانی ذکر خیر شما توی منزل ما هست دخترم همیشه شما تعریف میکنه خدمت از موسقه ی فوتینی. اتفاقا 38 جون تو خونه تم مدفع به زبونش نیلوفر. تو آشپس خونه نیلوفر، تو پنجره ی نیلوفر، تو اتاق نیلوفر. البته منظور مادرم اینه که خب چون جز کارمندای خوب من هستن، من مدام ازشون تعریف می کنم پیش مادرم. بله. بله. <مع> البته وقتی که نیلوفر جون گفتن شما تشریف میارین، ما خیلی خوشحال شدیم. بله، مادر پدرم وقتی فهمیدن شما دارین میای همه محله شیر می دادن بله که البته نه که دیرو سال بابام بود ما نظری دادیم براشون تو محله اچ ما ما کی برمیاش می مبارک باشه <تصفح> البته من به عنوان یه آدم بی طرف این حرفو میزنم که من آقا یا بشر سال, ها سال, ها سال های سال که میشنم یعنی همکار بندم خانم فاطمه میدم می شنام ر چیزی که هستش در تخته همیشه به هم میاد اینشان که جور میشه <تصفح> آ هم بلند میشه. بش بش. بش. ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده و, و در دوباره دو بلند میشه. بشین دیگه. ای دستویی میخوام برم. <تصفح> تایه رارو بفرمید بفرمایید همین تایه رارو. سیاوش به سمت دستشویی میره و نیلوفر با زوغ نگاهش میکنه داداش این نیلوفر پشت سر هم میوه و شیرینی میخوره بله الو بهزاد سیاوش <ص OG> بله بله ببین من اوکی ام خب فقط نمیخوام الان جواب بدم یه وقت نگیم طرف هول بود آره شما الان از قیافه مانتو خوشت اومده درسته دیگه ها؟ حالا میخوای ببینید رویه و اخلاقش جوره به نظر من رویه و اخلاقش هم خوبه البته شما الان که خوشت اومده برای دو روز دیگه چک بده چک؟ دو روز دیگه چک چی؟ چک؟ آخ خب خوب گرفتم گرفتم خیلی خوب باشه لونتی ها؟ عجب دوره ای شده دیگه این روزا نمیشه به چک مردم هم اعتماد کنه بستگی داره آقا و کی بکشه خب پسارم میگفتی من تا یکی دو روز دیگه چکو تقدیم بکنم <تصفح> چک؟ <تصفح> چک؟ من گفتم چک؟ منظورم اینه که تا یکی دو روز دیگه من جواب میدم خدمتون اگر چه جذب بدیم ما از خدمتتون مرخص بشیم. ما مه... خوشوقتم. آخ، خوشحال شدم. سیاوش از اسکولند میشه. سلطان دفتر به حساب پشت میز نشسته و سیاوش پشت کرکری ایستاده. اینو من تا حالا ندیده بودم. بابا، شقولی های. چه لنایدی بودی. زندگی رو زندگی رو از این زاویه ندیده بودم. چه زاویه؟ زاویه ا انگوز وقتی از خونه اومدم بیرون همه چیز زیباتر از روز گذشته بود. خورشید تر از روزه گذشته بود. درختها خوشگلتر از روزه گذشته بودند. گلا خوشگل‌تر بودند. بوغ ماشینا مثل چکه چکه بلبل بود تو گوشم. ترافیک اصلا اذیت کننده نبود. همه چی زیبا شد. من تازه فهمیدم کلمه عشق یعنی چی؟ تو که بوغ ماشینا واسط مثل بلبل میمونه صداشون گوش نوازه همه چیز دیگه حل ده. الحمدلله ها خود دختره خوبیه هم خانوادهش خوبه فقط کاش من نمیگفتم دو روز دیگه جواب میدم همش تقصیر تو بود یه بار همونجا هم هم میخوام جواب بده میگه دو, دو دو روز دیگه جواب بده یا همین دیگه میگم کوری دیروز کور بودی امروز غلی مرد حسابی اگه دیروز جواب مثبت بهش میدادی تا آخر عمرت تا میدید و تا دیدی یادته دست رو پا گم کردی هر شدی؟ اونگاه دید میگه سیاوششون اینو بخور سیابش اونو نخور سیاوش اینو بپوش سیاوش اینو نپوش، سیاوش نره جلو سیاوش نره اقف سیاوش بنا خیلی خوب بابا خیلی خوب میخوایم بگم ده روز دیگه جواب میدم؟ حرو نشد دیگه سیابش از لای کرکره خانم فاطمی رو که امروز بیشتر به خودش بسیده نگاه میکنه. و تلفن همراهش زن میخوره و جواب میده نیلوفر به سمت دفتر میاد و سیاوش پول میشه و پشت میز میشینه سلام خانم فاطمی میتونید منو سیاوش صدا کنید آقا این سیاوشه باستانی نه منو سیاوش بهتره ها بعضی چیز اسم کوچیکیشونه دیگه میدونه خودش رو سیاوش مادر بنده تماس گرفتن بعد گفتن که اگر شما یه چه موبایل قشنگی داری به بهتون میاد من میتونم نیرو این موبید را چند خریدیم؟ نه هدیه است هدیه گرفتم درم هدیه مم. هدیه است آره پنش سال من و تو هم رفیق بودم بعد داشتم میگفتم مادرم تموز گرفتن گفتن اگر شما اجازه بدین که دو صد ماه بری مرخصی که خرید کنید خواهش میکنم شما کلن مرخصی یعنی یه چیز اینجا مطلب به شما از هر وقت دوست داریم بیاین هر وقت دوست داریم بریم من فکر میکردم که قرار ما ب... با هم بریم خرید کنیم نه؟ یه آقایی توی سالون به این کارگرها شیرینی پخش میکنه من میکنه اچه چیه کیه اون کیه کیه اون آقا داره گل شیرینی پخش میکنه ای مدن سلام آقا از کن تش سلام عشقان هستم بله خوش بخش بریم از دن؟ بله بگه درستید آقای باستانی آقای سیا باستانی با اجازه میلوفر و عشقان از در بیرون میره باشه باشه عشقان؟ عشقان؟ چی بود حالا اشکانش من کاری ندارم عزیزم عزیزم خونه یه سیاوش من نمیدونم این وسط دروزه دیگه خبر میدم چه سیقه ای بود کلاس میذاره من آقا به جای که دختره ناز کنه این داره بر من ناز میکنه هیچی دیگه رو مثل برگ گل بود مفت مفت از دست دادیم همین آخه مگه میشه در از یک روز خاصی که جدید اومده اینا دروغ میگن اینا دروغ میگن چه دروگی دارن بگن مگه پسر هر جدید بیا اینم کار اونو بهترش می‌من گفتم بیا خواستگاری من مریض دارن قبل از اینکه ما بریم خواستگاری که اتفاقی نیفتاده بود که بعد اینکه پامونو گذاشتیم اومدیم بیرون به سه تا خواستگار براش پیدا شد دختره رو رو هوا شکار کردن بله مردم زرنگن زبلن همه مثل تو حالو نیستن که دو روز دیگه خبر میدم ای به مارمولک من اگه دستم به برسه اومده نشسته اونجا آبروزی هی همین پشت سر هم به شیرینی مگه تو خونت نداری بخوری مرد حسابی دو روز دیگه چک میکشم دو روز دیگه خبر میدم بهزاد بهزاد داخل دفتر بهزاد و سیاوش دکمه های بسته بندی شده رو میشماره نه چه اینا رو میگم اینا رو نشمار اینا را ما می تو میگی دوروز دیگه جامو بشه بده منو من همش هر طور گوش کنه میگی صور میزنه آقا باز چی دادن هیته تو در فکر ما نمیگوشه تقدیمینه تقدیر میشم میشم تقدیمش رو وانا برم گفتم هر من دایین که با گفتم دوروز دیگه بخاصه که بر من چی قص بده قرر ببینم بابا کی میشه من که تو چی گفتم بهتون که بس مخاطب بزنه کرده پول با همه چی میگی و ارزش دار آقا ببین چی تو بعضی شما عزیزم من گوش نمیدی هر دختری به درد زندگی نمیخوره دختری که دنبال پوله ثروته مادیاتی به درد تو نمیخوره نمیخوری با هم زندگی کنیم ها اجاره نگیرید احساس نکنی اخلمت و غریبه میشی با خیری شما هم کن یه جزیره عجیبه کار خودم رو که همین من. تو با کت با یکی از اینا ازدواج کنی میدونی چرا اول حفظ خانو فاطمی رو دهت میوری دو خمین چه عزیز اطراف اگه یه دفعه بفهمن که آقا توی با یکی از اینا اززواجی نکردی اون موقع یعنی میگن آدم ببین چی بوده که کارماندار باشه ازدواج بنیخوره حالا تو میگه آه بیار بیار. بهزاد سیاوش رو پشت کرکله میاره و هر دو بیرون رو نگاه میکنه خانم, صادق. خانم صادقی خانم خانم صادقی خانم صادقی چشه هم دختر خوبی هم به زندگی میخوره احبارم نداره بهزاد به خانم صادقی که در حال سوزن نخ کردن و با خودش میخنده نگاه میکنه سیاوش آتاق بیرون میاد و یکی یکی به خانم ها نگاه میکنه خانم ها که هر کزومشون پشت چرخ نشستن یکی یکی به سیاوش لبخند میزنن سیاوش با دست محکم روی میز خانم صادقی میکوب و یه پارچه رو برده خب دوستان عزیز واقعا خسته نباشید من خیلی خوشحالم کیفیت کارا بسیار خوب شده اما در میان شما یک همکار عزیزی هست که کارهاشو بسیار بهتر از بقیه انجام میده و بسیار باصلی دست هنشون و ایشون کسی نیستن جز خانم صادقی ازتون خواهش میکنم که از این بعد خانم صادقی رو الگو قرار بدید. اون خانم فاطیحی رو دیگه نمیخوام الگو قرار بدید. ایشون الگو هستن از این به بعد. خانم صادقی میخنده و توند و توم پلک میزنه. منزل خانم صادقی همه دره هم نشسته. پدر خانم صادقی کنار سیاهش نشست و خودش رو روی دوشش اندخد چقدر خانواده تو با حالا نخصا پدرمی خیلی دو با حالا الان میبینی با حالا شد پس باشت و بعد که شد ما خیلی خوشان شدید در خدمت شما بودیم و با تون آشنا شدیم ما بیشتر یه می کنم سرالا شما تحریفی کنم لطف دارا با مرده ترک می دو خانوم به چونم خب می شود خب می شود شاد داشت در جنار شمای شما فقط می یه سیستوال یه سیستوالی سیستوالی زمان آ بله بله فقط اگه قبلش اجازه بدید یه نر، دستشی کجاست؟ دستشویی؟ خب حالا بگه پیدا کن. دستشویی؟ حالا دستشی، حالا چه حالی دستشی؟ یه زمان چوپ. حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا من اوکی اوکی فقط نمیخوام سریع جواب بدم مثل اون دفعه نمیخوام بشه چی بگم خب باش باش ببین آوا پس بگم فردا جواب میدم مطمئنی خوبه خیر خوب باشه خدا سی اوش توی آینه دستشویی خودش رو نگاه میکنه و میخنده <تصفيق> خوشحالی از یادش نره. ها درووشه. مشکلی هم بده کردی؟ بله بله. راحت شدی؟ بله. ا ما خیلی بهتون زحمت دادیم. فقط اگه اجازه بدید صحبتای نهایی رو من فردا اول وقت با شما بکنم. آقای صبوری، لوپسی یاواش رو میکش. و با دست محکم پشت سی میزنه. سی روی زمین میافته. خونه ی سیاه که کپش خلوص میخونه این خانم فاطمی اگه به فهمی چجاش چار تا میشه اح اح اح با اون شوهرش سلو نه اینجوری نگو نمیگفتی فردا رو میدم آن قضیه رو میرفت نه مادر من یه چیزهایی هست که در زندگی بهتر شما بدونیم اگر من گروه بردن هجره نمی کشتم فردان همین رو پت میکرد تو سر من اون وقت میخوام اون رو نمیخوام از این خوشم میاد از اون بدم میاد اینو بخر اون رو نخر اینجوری این رو تا داده بهزاد از کجا فهمیدیم علم غیب دارم برای اینکه اینا رو خودم دیکته کردم بهش وقتی که داشتیم بیرفتیم برای مرسم خواستگاریش مرگ بفرماییم مرگ بفرماییم بگو مرگ باباش خرید باور نمود. خدایا. خدایا. سلام خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. خدایا. قیافه مادر سیاوش تو هم میره اه. سیاوش با دهان باز مادرش رو نگاه میکنه آه, اه. اه. آه, خب اه. بله بله قسمت قسمت مبارکه خوش خوشبخت بشم خدا نگه. خدا نگه. مرد شوره اون گربه کشنه دم ببره چرا؟ هیچی دیگه پسر خالش از آلمان زنگ زده ازش خسگاری کرده مزرد. اون بهزاد خان خودش ازدواجش کرده تشکیل خانواده داده حالا داره به تو خط میده بکش حقیقته بکش مم. داخل دفتر سیاوش وسیله ها رو به سمت بهزاد پرتاب میکنه و بهزاد دیگه پوشو جلوش گرفته و از خودش دفاع میکنه. میبکنین. میبکنین. میبکنین. تو باش دیگه تاصلا نمی. میبوسه. من دستم، تو با شانسی گونمت چی؟ من بچه‌سم. مم... چطور من خواسته کاری هر کی میرم؟ تو به من میگه برای من خواسته داری بدون اینکه نمیخواد؟ معلم جواب یکی بهش میگه که همین رو بهشون بگی. بگو چی میگی؟ معلومه چی میگی؟ میخواد بگی من گفتم ها؟ خجالت بکش. برو ببین. چه کسی مثلا رفیقش این کار میکنه که من بگم دفرم میشم من نشستم؟ به جان خودم. اگه به خاطر مادرم نبود، اگه به خاطر آرزوی پدرم نبود، خیلی همه چیزی میتونم خودم میکومون نمیرفتم سیگار فروشی میکردم. چه جوری که چیزی نشود، تو این قصهو کار کنم، چیکار میکنم؟ بسو احساساتمو میکنم. مگه گران احساساتت نباشی که اتفاقی نمی‌افتاد نشود یکی دیگه ببین چیزی بهت میگم اگه بد گفتم بزن موختم تو به حساد گردن سیاوش رو میگیره و به سمت کرکرره میاره سیاوش داخل سالن تولیدی میاد و به کارگرها نگاه میکنه. خانم ها یکی یکی به سیاوش لبخند میزنن. سیاوش دستش رو روی میز خانم شایسته میکوبه. من اومدم خدمتون عرض کنم که کار کردن رو از خانم شایسته یاد بگیرید. ایشونو الگو قرار بدید. خانم و خانم فاطمی نه، فقط الگو الان خانم شایسته خانم شایسته با میخنده منزل آقای شایسته به به همیشه از خدا آرزو داشتم چنین دامادی نصیب دختر من بکنه آفرین، آفرین. همون چیزایی رو که در رویا میدیدم و فکر نمی یه روزی به حقیقت به پیونده امروز جلوی چشمم ظاهر شده آقای با شخصیت فهمیده چقدر بالای رعنایی ورزشکار اصلا باورم نمیشد یک همچین دامادی به اون بشه و خواستگاری دخترمون بیاد ببین چشمایی به این زیبایی رنگ اصلا دماغشو نگاه کن به انگار عمل کرده با کمالات پوست سفید چقدر خوش سلیقه چشمایی نافذ اصلا از هر تار سیبیلش کمالات میباره آفرین آفرین به شما بسیار بسیار داماده ای هستین شما با این قد بلند با این هیکل ماشالله هزار ماشالله درشت و خوشتیب و خوش لباس با پوستایی به این لطیفی ببخشید دستشویتون کجاست؟ اینجا همینجا آه بله ماشالله ماشالله هزار ماشاله هیجل شما نگاه کن سیافش بلد میشه و به سمت دست میره ماشاله ماشاله هزار ماشاله خدا واقعا از لحظه که اومده این عروس گل رو دمه در دیدم این متانتش وقارش سنگینیش منو شگفت زده کرد حالا امیدوارم که به زودی نصیبمون بشه یه همچین عروس خوبی از حالا به خودم تبریک میگم چرا من طالب این قیافه دقت نکرده بودم؟ سیاه و اشت تو آینه دست شوی خودش رو نگاه بگام... میکنه. بابا حیفم به خدا. من حیف هم. الو بسا. ببین من الان خودم میخوام برم جواب قدی رو بدم. موردشی رو ترکیب اون نظریه تو رو گلد. نظر تو رو مثلا نمیخوام. خدا بس. جانم جانم جانم مرد حسابی خجالت نمیشی یه ساعته اون تو چیکار داری میکنی چیکار کردی اونجا آقا مگه تو ولیسم اون موندیه ولی شهرزادیه والله بابا این ریخت و قیافه‌ام عادی خاص کاری دخترم با اون قیافه‌اش نگاه کن چشات کن صورتش رو گو هر چالش دادا میمونه هستش که این عین مصاداست آره آقا مواش هم که این بوز میمونه کتشو باورش مسخرهش اگه این سکه شما تربیت کردی؟ خری میبشه رو؟ من نگاه میکنه. کجا داره نگاه همیشه چند سالا به این فکر بودم این جفایی که در حفتو کردمم چطوری میتونم چک کنم؟ وای شخ گلروز. سیابش با دهان باز به خانم شایسته و آقایی که روبرش ایستاده نگاه میکنه. عجيبه من نگاه میکنه. کجا داره نگاه بابا دو دفتر بابا کن تصورشو نکن نرم که تو دستشوی خاصی اومده مرز که با بای دولا بیرو من رفتم تو دستشویی، هنوز تو دستشویی بودم دیدم یه خواستگاره دیگه ای، مگه میشنم چیزی به این صورت؟ نه ممکنه زیبه موم شده یه برای اومده برو زهرمار من خند اینقدر میگم آخه چرا اینجوری میشه به این ساعت این دفعه سومه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو بشارزی از آن قدمت قدم من اصلا میگه قدم من اصلا اصلا اتفاقه طرفه من نسیم من که میرم سر یه براش بردم یعنی قدم من اصلا نس نیست خیلی هم خوبه میدونی زیادش بریم سر دستا می‌ذاریم شاید بوش عدد شده آقای حالا که شد من پرونتر از این الفام. اینقدر میرم تا بشه من بگم داماد سیاوش یه نفس عمیق میکشو از در بیرون می ده. سیاوش به سمت خانم مهربانی رو با دست بوی میز می کنه. اگر توی این کارگاه دنبال یک نفر فقط یک نفر میگردید که بتونه الگوی شما باشه اون فرد کسی نیز جز خانمه مهروانی شالله که قسمت شما هم میشه ماشین سیاه توی کوچه به این ور و اون ور میره سیاقش مادرش با گل و شیرینی از ماشین پیاده میشن و دنبال خونه ی خانم مهربانی میگردن خانم مهربانی از پنجره پایین رو نگاه میکنه اینه ایجا شو شو شو شو شو شو گفت گذواییم داد، گذواییم. این خالی. شنوزه خالی پیدا یعنی همش و باز کنی. الله منم من یه مرد قد بلند و قبیحه چلب با گل شرینی جلوی سیاوش ظاهر میشه. خستگاری بله منزور <تصفيق> چه جاله من اومدم خستگاری خانم مهربانی شما خستگاری کی اومدی من اومدم خستگاری خانم مهربانی ولی من قرار بیمت که بیمم خستگاری با رو میم با شکرو خمک با خمک با چه برگری ها خواستگار خانم مهربانی داخل خونه میرن و در رو به روی سیاوش میبرن سیاوش گلو شیرینی رو روی زمین پرت میکنه و با پاش محکم لگهدشون میکنه حالا که اینجا شد من پروتر از این عرفم اینقدر میرم خواستگاری تا به من بگن داماد خوشقدم اصلا از تک تک این رو من بریم میکنم یا بش یکی یکی از تمام کارگراش خاستگاری میکنه اونا هم فوراً بختشون باز میشه و ازدواج میکنن. کارگاه سیاوش روز به روز خالی تر میشه و کارگرها بعد از خاستگاری کردن سیاوش ازدواج میکنن و یکی یکی به خونه ی بخت میرن هر روز کارگرای جدید میاره و ازشون خواستگاری میکنه ولی موفق نمیشه با هیچ کدوم اونا ازدواج کنیم همه یه کارگرها رفتن و فقط یه نفر مونده که اینقدر سن و سالش زیاده که حتی نمیتونه یه سوزن نخ کنه به حساب بارده کارگاه میشه و میبینه که کارگاه خالیه سلام بقیه کجا؟ همه خوشبخت شدن رفت از سر زندگیشون شما چرا اینجای پس؟ خدا کریمه ناامید نیستم بهزاد به سمت دفتر میره و رو بر میداره سلام همی جان چطوری؟ ها... چیه بابا تا بهت رای میزه می پول پول پول؟ پول خوره گرفتی؟ گوش بدی یه آگه دارم یه آگه ای دارم, دارم بزن رونا حسابش بهت می دیگه پولشون بزن بگیم ایت به تعدادی خانم مانتو دوز مجرب نیاز مجرب چیه؟ میگم مجربه به داره در نداره خداحافظ پول خوره اینجاست؟ به سمت در میره کلی خانم جوون جلوی در ایستادن بفرماییم کارگاه آقای سیاوش با اینجاست؟ خانوم ها یکی یکی وارد کارگاه میشن و بهزاد با تعجب به اونا نگاه میکنن ببخشید این استخدامتون از که شروع بیشه آخر همه خانوم ها یه پیر وارد کارگاه میشه آخر همه وارد کارگاه میشه مادر شما به چی اومدی؟ منم اومدم استقام بشم اشکالی داره؟ نه آخه عقدس خانوم جون شما دیگه چرا این حرف رو من متوجه حرفای شما شدم بله من که دختر ندارم هیچ شما این که دختر دارین بله الانم سیاوش نیست خونه نیست هر موقع اومد چشمش میگم منتها شما یک باره آدرس رو بدین دقیق ماشین سیاوش جلوی خونه نگه می‌داره و سیاوش و مادرش از ماشین پیاده میشن. آمان بیا دیگه چه واسه دیی من دیگه خسته شده نمیام خسته نداره که بیا تو اگه خوش داری باید بگونم خب همینه الان میگم نمیام اصلا شما دختره دیدی؟ من نیزم ولی مادرش دیده خیلی ازش تعریف میکنه گویا اینه قرص ماهه تو بیا تو حالی میری اونجا بینیم شبیه کره ماهه سیاوش و مادرش بارده خونه میشن خب سیام نظرت چیه؟ من که از اولش هم گفتم خستم نمیخوام بیام. تو گفتی جزو قرص ماهه سکن بهتر. آره شبیه یه شبیه... کره دیگه است باید کشف بشه. اوخ اوخ اوخ خوشا. بفرمایید میوه و چایی دهنتونو شیرین کنی باشه بریم من دیگه حوصله ندارم. خیلی خب دکتر برو من نمیام. با عزتزم ما از خدمت مرخص میشیم پاش بریم همون دیگه میریم شما برو تا ماشین گرم کنی منم میام؟ گرم کردن نداریم تابستونه که تازه ماشین الان خاموش کردم منظورم اینه که کلی <تصفح> رو روشن کن راست میگه تابستونه کلی رو روشن کن تو هوا خونک <تصفح> بشه منم اومده خدا خدافز خدافز خدا. خدا <تصفح> <تصفح> پدر خانواده یه بسته اسکناس به مادر زیابش میده اگه بدونی سیاوشو با چه مکافاتی آوردم مگه میومد؟ <تصفی> دسته درد نکنیم به زحمت چشیدیم و چکم قابل شما <تصفی> بله سلام خوب هستین؟ مرسی مرسی خوب هستین ممنون بله بله هستین کشیف بیدین خوشحال میشیم قربان شما بفرمین <ع offend> نگفتم اینه ها خب این که درسته درخشید فقط شما بابت گل شیرینی هم دوتش کنید بیست تا هستی توانه حالا دیگه بسیدی به کرمتون ممنونم خدا نگهتا خوشبخت بشید دخترم خدا حافظ سیاوش روی تختش نشسته و به دستاش که در حال لرزیدانه نگاه میکنه <تصفيق> مادر سیاوش با یه لیوان کوره زبون ورش... وارد اتاق میشه الهی من قربون شکلت برم تو اینجای ای من نمیدرستم اونقدر دنباله کشتم بیا ببین برای چی آوردم من دیگه دارم میترسم مادر من از چی میترسم؟ نگاه نگاه دستان ببین میلرزه باشه دستان من آه ببین میلرزه نکنه فکرون این اونم تو این سن و سال نه پارکینسون پا کیچنس یعنی چی من ترسه گینه دخترم هم ها ولا اصلا خوشگلی بهتر پیدا میشه یعنی چی یعنی چی اینجوری فکر نکن مادر تو اینا همش اتفاقی شده اصلا قسمت نبوده اتفاق یه بار گفتن نه ده بار ده بار که جر... اتفاق یک بار چه ده بار اتفاق همینه دیگه ببین آدم میره مثلا میخواد روز سری بگیره ده تا مغازه به بیچاره تا بالاخره یکی گیرش بیاد من این قضیه رو باید این قضیه رو این من قضیه رو میخوام برای تو صحابت کنم پشتون پشتون پشتون برای تو صحابت کنم ببینید من زحمت کشیرم اینو برای دمش کردم اینو بخور این؟ گرگاف زبونه م... م... گرگاف زبون بخور م... خیلی خواب بدون من نخور ای بابا ماشین سیاه وش جلعی یه خونه نگه میده آخه بچه جان حالا یه بار این اتفاق افتاده قراریز که همیشه این مساده تکرار بشه که عزیز من حالا که یه دفعه دفع بوده چند دفعه بوده حالا که باوره میکنی همجه بشین تماشو کن سیاوش با گل شرینی از ماشین پیاده میشه و به سمت زن کولی که کنار یه دفتر رسمی ازدواج نشسته میره و ازش خاستگاری میکنه و به سمت ماشین برمیگرده را گدا که ظاهرا معلول هم هست به دختر کولی نزدیک میشه و میست و بهش نگاه میکنه. مرد گدا و دختر کولی وارد ساختمون دفتر رسمی ازدواج میشن. می‌باعم خودم دیگه باورم شد. دیگه با خودم ثابت ثابت شد. دیدی دیدی دیدی. بیا باش پشما در پشم قربونت برم. پاش اینقدر تنبلی نکن. میدونی از کی درم صدا. پاش روی تختش خوابیده و مادرش کنارش نشسته. ها پاش. کاری کل بچه خوب. من که اصن بهزات بگم نمی‌ام سر کاری ندارم. اصن اون کارگاه کار نیست کار. اینه نگاه کن ببین برنامه‌ریزی کردم برات. ببین ساعتی 11 باید کجا باشیم. خونه عکدس خانم اینا. خوب. از اونجا باید داریم تجریش. خونه تاج الملک. نیم ساعت اونجا بشینیم. بعد پاشیم بریم نیاوران. تازه سه چهار جای دیگه باید بریم. باید تو ماشین زنگ بزنم آدرسشونام نذارم تا حالش هم کلی گیرمون شده. پاشم من این فرصت پرفتای تلی رو از دفتر قربونی شهردارم. کار باید پول توش باشه. مادر سیاوش واسش کنار تختش سبحان آماده کرده. باید تی هم کردیم. بله خیلی هم خوش قیمت تی کردم. تو نگران نباش. میگم این خانم فرامرزی فراموششون نشه سی بار زنگ زده. بابا من فکر همه چی کردم فراموشم نشده بابا من کارم دقیقه این تو فهمت... خانم فراموشی همون که خیلی شما بدتون میومد ازش الان دوستش دارم باهانی در رایر پاشو نمی. ای بابا چرا نمیای؟ من تا صبح رو نمی. نمید تو باز کن ببین دیگاه سیاه و شما مادرش خاستگاری میشه چی منطقیدم میدوزد چی کار کنم که بعد هوای جند اینجارم تعمل کنم نه بابا آره بابا مطمئنم که از من خواستگاری میکنه سه تا گوزفن نزر کردن ماشینا هم میدم به داداشم تو خدا دعا کن حالا دختر خاله اکرم میگفت من تا در ندر اومدن برگشتم فقط یه نگاه بایم کرده دو ساعته برش خاستگار پیدا شد نه بابا نخواستیم دو ساعته ده روزم پیدا شد راضیم. از کجا معلوم؟ بابا پسره خواستگاری هرکی رفتی اتفاق خوب برش افتده آره یه لحظه ببین بهش میگن داماد خوشقدم خیلی خوبه چون همه کسایی که اینجا اومدن نه بیافهشو دارن نه ارزشو خوبیش همینه از نفس دو بود. به من که بود. به اینکه سیاوش و مادرش بلند میشن، هوادارا وارد میشن. داخل کارگاه الو الو سیابش کجایی؟ تو خیابون چه کار میکنی؟ باشو بیا اینجا بخ بدون کرده باشو بیا بیا اینجا اینجا پور پول. الو سیابش الو عجب احمد یه ها آقا اگر نمیاد ما بی خودیمو اتر نشیم بریم آن نمیاد چون که میخوایی درو بگی؟ ادقا صدر تلفن فکرم میکردی سدش تا اینجا اومد گفت نمیاد بریم بری, بری بابای نامار دست واقعاً. بهزاد با تعجب به اونا نگاه میکنه. وای خدا تو سرت. دیگه این همه پول. سیاوشو مادرش دمه در از دختر خواستگاری میکنه. سلام سراب، سلام علیکم. ولی چم خوبه. تشکر. از من خوبه خسته نباشید. مرسی. علاخید از خانم خوب شما این آیشونه. باز اینقدر شما بشه. متشکر. سه تا فهمید. <ملاحظم> بله. بی زحمت پولو بدیم به مادر. بله خواهش میکنم. ببین ممنون مشاشا من فکر می کنم این 100 تومنش کمه بلی همین اندازه داشتم دسترس نم. آخه مامان قبلا اشکال نداره اشکال نداره ببین سلام میکنم و بفرمایید دکتر خانم من بفرمایید سلام علیکم سلام داخل دفتر این تو چیکار میکنم؟ چه میکی؟ همیده لخنت سر نگو؟ خانوم تقییپور؟ خدا از آسمان برای ما اینو فرستاده ای رو زنیم فرشته است از هر انگوشتش صد تا خونت میباره آره از هر انگوشتش هزار تا هنن رو برم منطق هننش میفته تو چای مردم این همونی که ناخونشون داره تو چای من حاج قریه علی بشین بشین حرف علی بشی. کی لازم واسه خالتی چی بده ببین اگر این خانم نبود اون عزاحوال اینجا اینجوری نبود اگه این خانم نبود ببین این همه حمچخ اینجا اضافه نمی‌شد اگه این خانم نبود زیبایی به اینجا بر گشت اگه این خانم نبود ما نمی‌تونستیم کار بکنیم اگه این خانم نبود ما الان منو تو پشت خ... بخلق بخلق ب... من میکنه ببین داخل کارگاه تعداد چرخا و کارگرها زیاد شدن و سهر و خوهرش هم پشت یکی از شرخان نشسته. سهر سهر این هم که اومده بخواسته گریم نه چون کاری تو بکنی باشنم کاری هم که ما نگم فرام کرد فراما آره چیز سهرش رو فهم نکرد پیش ما دیگه نماز کنید آخا مفکرم چونی مجرد سجا که همه که سرخانم و این تابلای سو چیز در دیگی سو چیز درزن دیگی ما میروم به کار خود میکنم بیزنس جدید سیابش و مادرش دوباره مشغول خاستگاری رفتن میشه آقای اعتماد به نفس بهزاد پشت سرهم برای کارگاه پارچه و چرخ خیاطی میکره مادر سیاوش هم از مراسم خواستگاری کلی پول میگیره. سهر داخل کارگاه مشغول کار کردن و خندیدن. سیاوش به سهر نگاه عمیقی میکنه و میخنده. سیمین جو قربونت برم بخت دختر من فقط به تو پسر بسیگی داره بیدم چی کار میکنم ایالت راحت باشه تو چه هم نگروی با تو باشی میگم بیا دیگهش باش باش باش باش باش باش باش جواب نمیدی بیا کیم نمیشن یادت نمیاد خوهر منیجه جونه دیگه قول بده ترى که پا برادر دخترش تو ماشینه یه دقیقه بشی رو بیا بس دیگه مامان من خستم میخوام برم استراحت کنم بعد داخلی نکود دیگه بیا پایین بابا صحبت کردی که بیادش سیاوش از ماشین پیاده میشه و به سمت ماشین خواهر منیجر خانم میره سلام علیکم خالیش شما چطوری حالجم خوبه ممنونم مرسی دکتر خانوم ایشون هستن بله بله بله ببخشید بفهمید خدمت آه. شما دور اونجا خانم خیلی دوره این خدمت شما اینشالله که خوشبخت بیش بازن گرده متشکرم. دستتون درد نکنه بله بله شما بابک بفهمید بله امشب خایرش بکنم گوشی گوشی بابک داره امشب میاد خواستگاری بابر میگم؟ باور کن بایش. جون دست کنه قربونت برم نمیدونی نمی‌دونی چی‌شو بفرمایید زن قربونت برم قربونت برم, برم. برم. برم. خیلی راحت باشه فدات بشم ولای اینو تو رو نداره نمیدونی چقدر خوش حالا ان هر چی که میخوای خدا برات قربونت برم ولای دکترم میگم خدا خداید خیلی دستتون درد نکنه با تو خداحافظ شما خدا, خدا, خدا, خدا, خدا خبره بریم تو نه خیلی خوشحالم ببین یه پیشنهادی برات دارم مطمئنم نه نمیگی میدونی چیه به فکرم رسیده که با تمام پولایی که این جمع کردیم خونه قدیمیارو می‌کوبیم خب بعد یه برج می‌سازیم این روزا پول تو برج سازیه بس دیگه مامان هر پول براتون داشتم معلوم نیست چی کار می‌کنین چه بلایی سر من میاری؟ با من پس، پسرتونم این پول که پول کار کردن نیست پول سیابختی و بدبختی منه اگه حال روزا بنداسی؟ گیزا شدم از همه چی شدم از این همه پول از این ماشین کوفتگی خونه‌ی لعنتی اصلا شعر روز دو ماه از این دو سه اصلا هیچ میگه گیزا شدم. داشتید نه برنامه نشه که برات کنه چه بده می‌خوره اینا ماشین خونه و ما. تو همین تو خوشبخت کردم عروضی کردن، ازدواج کردن قدید از دارم دازه شدن خب من وصل چی سمه من چی میشه خدا حاضرم جزیش خودو از اینو نباش من منم صفقیه بریفنم سره یه صفره یه دکترم من جواب آقه بده بگه بله نمیدونم آخری که تل اسم کفته زهر ماری که نمیدونم نمیدونم مادر سیاوش گیریه میکنه درزم بکره تقریب و فروختن اون خونر از سرتون بندازیم بیرون اون یادی باباست سیاوش سوار ماشین میشه و میره داخل دفتر سیاوش ناراحت روی سندلی نشسته به حساب کنارش نشسته و با در قندون بازی میکنه کار کاسبی چطوره؟ بیگه داره حالم از خودم به هم میخوره تو که وزدت خوبه چرا باید حالت از خودت به هم بخوره ای بابا الکی الگی زدم اون خراب کردم خودم انداختم تو درد سر سهر وارد دفتر میشه سلام سلام دخترم آقا به احزای گفت یه بسته سوزم به من میدیم چاش سوزنم به اتون میدیم من دختر خانم بله بیا اسم چیه؟ ساناس. چای میخوری؟ براش برای چای بریز. بش. میخوری؟ هم می‌خوری؟ اها. یا بیسکویت بش بده. بهفرمای خانم خودم. ممنون. بخور رئیس. خواهر سهرن گوشتش رو داخل چای فرو میبره قصر ببینم داغ نباشه ای آقایم میشناسی بله کیه؟ قرار بود دوماد باشه ولی خوب قسمت نبود الانم دوست داری داماد خانوادتون بشه؟ من که دوست دارم ولی آبجی سهر باید بگه آبجی سهرت میگه؟ رفا. چیکارش کنم؟ برو دیگه. بابا تو دیوونه ای؟ من یه دفعه رفتم خواستگاری، این دفعه اگه ببرم خب معلومه که جوابش منفیه. حالا یه بار رفتی، یه بار دیگه هم برو. بابا تو اصلا انگار در جریان قدم نحس من نیستی. من اگه ببرم خواستگاری سری یکی، خواستگار دیگه پیدا میشه. شما نگران قدم نحستون نباش. به نظر من اظرم شما آقای خوش‌قدری. پاشو برو. پاشو برو بغلش بمال. پاشو. بهزاد بسته سوزن رو به سیاوش میده. سیاوهش بسته سوزن رو میگیر و از کارگاه بیرون میره سیاوهش کنار میز سهر میسته سلام سلام برای. خسته نباشید من نیم سوزن میگی یعنی سوزن گفتید میگی یعنی خدمت کاری داری؟ نه. یه چیزی داری؟ داری. اوه. اوه. اون خورده رو بزن. خورده رو دونست من یک سوالی داشتم از خدمتتون اونم این که شما بالاخره ازدواج فرمودیم یعنی چی بالاخره شما شافه کرد از اون دکرم که تو دست در مادرم موندم بالاخره ازدواج کردم نه نه نه نه من من فقط یک سوال میخواستم با همین خیلی خوب سالالتون رو کردیم بفرمایید میگم پول بود من بالاخره اون جواب سوالات. من همیزی آقا سوال همو نگرفتم نه خیره نکردم حالا جواب سوالتون رو گرفتین بفرماییم بزن، به کارم بگیس نگم کوله رو تو رو بپنده این رو اون کولر رو با هم ببرن نمیخوام خواموچه چی چی میگویم شما هیچی نمیگه شامو خود میکنی بهش بگو من نمیخواستم حرف بزنم فقط... بهش بگو هیچیه هیچیه هی هیچی بهش بگو واقعیت تلخه بهش بگو تلخه واقعیت زاید خیلی شیرینه بهش بگو بسه بگو بهش بگو رو انداختین اصلا به من چه من چه به خلالت میدی خودتون رو هر کتونه بزنیم دیگه خلال خلال خلال همین یک چیز بهش بگو گیه چی نمیخواد بگیم بهش بگو اکه آدم یه نفر رو دوست داشته باشه ولی نتونه بهش بگه چی کار باید بکنه بهش بگو که وقتی که جرأتشو پیدا کرد که حرف بزنه باید حرف بزنه البته اگه حرفش هم حرف بهش بگو آخه یه مشکلی هست بهش بگو وقتی که مشکلش حل شد حرفش رو بزن بهش بگو باز که كده این بهش بگو بهش بگو من لازمين به پشت سر سیاوش میاد خودم بهش میگم برو چی میگی برو دیگه چی هم کنه دورتون داری آره دورتون داری برو بفرمون سر خوالون بیشت بفرمون کارتونو بخونه میدونی حقیقت چیه این دوست من حقیقت میخواست یک چیزی رو به شما بگیه ولی خب یه چیزی تو دلش گیر کرده نمیخونه بکر خمی تابلا بود میخواست هست هر کاس بودم اه سارسی چی خب راست بگید دیگه حرف حقیقتو از بچه بپوست با درست میگه دیگه همینه پس چرا خودش چیزی نگو ندونیم این قبشی هم دوست من یه مشکلی داره چه مشکلی داره کلی رو داره نه نه نه بجتم که من در حقیقتشی نمیدونی پرجم میل خواستگاری خب برای اون که از یه خواستگاری جدید پیدا میشه میگه اگه بیان خواستگاری شما میکنه بگه شما میگه خواستگاری جدید پیدا شد به خاطر همینه چون شما رو دوست داره نمیخواد شما رو دست بده خب آخه آقا سیاغر هایم بیاد خودش مبارکه بهزاد با خوشحالی از جاش بلند میشه و همه کارگرها هم دست میزنن درستی بله؟ کوین با دستشگه از درستی در خونه ها سیاوش و سحر به سلامتی با هم ازدواج میکنند و به خونه بخت میرند. و همینجا به پایان رادیو فیلم داماد خوشقدم رسیدیم ما یعنی من آرمان قفاریان به عنوان تنظیم کننده رادیویی و راوی این رادیوفیلم به همراه صدابردار عزیزمون علی آقای حاجی نوروزی و سردبیل و تهیهكنندهٔ محترم فرشاد آزرنیا برای تمام جوونهای عزیز آرزوی خوشبختی میکنیم و از خدای بزرگ و مهربون میخواییم که هرچه سریعتر ازدواج کنند و به خونهٔ بخت برن و خوش و خوررم در کنار هم زندگی کنند تا یه رادیوفیلم دیگه خدا نگهدارتون